الا بستان دو مه 2008 این پنجشنبه صبح با سوزش گلو از خواب بیدار شد حالتی پشمورده داشت چون چند شب بود با زر که به آن عادت نداشت تا دیر وقت می‌نشست ریتم بدنش به هم خورده بود با این همه باز هم میز صبحانه را سر موقع آماده کرد و همراه خانوادهش سر سفره نشست. وقتی دو سر این که ماشین کدام یک از بچه های مدرسهشان با است جر و بحث می کردند وانمود کرد که دارد به حرفهایشان گوش می دهند. اما فکر و ذکرش این بود که زودتر سرش را روی بالش بگذارد و بخوابد یک دفعه اورلی گفت ایوی میگوید جانت دیگر هیچ وقت به خانه بر نمیگردد راست میگوید مادر در لحن صدایش هم تردید بود هم انتقاد الا گفت البته که نه با خواهرت کمی مشاجره کردیم همین و بس توی هر خانواده ای از این مشاجره ها پیش می آید. بعد خودش تمام می شود. این بار ایوی وارد صحبت شد و موزیانه و کنایدار پرسید مادر راستی راستی به اسکات زنگ زده ای و گفته ای را ترک بکند. چشمهای الا گرد شد. زیر چشمی به شوهرش نگاه کرد. دیوید ابروهایش را بالا برد و دستهایش را به طرفین باز کرد یعنی اینکه من چیزی نگفتم الا با آمرانه ترین لحن صدایش گفت اینطور که میگویی نیست بله با اسکات حرف زدم اما نگفتم که خواهرتان را ترک بکند تنها چیزی که گفتم این بود که برای ازدواج عجله نکنید اورلی با لحنی مطمئن حرفش را قطع کرد نگران نباش مادر من اصلا ازدواج نمی کنم ایوی لبخند موزیانه ای زد بله البته حالا انگار خاستگارها هم پشت در صف بستند. الا همانطور که داشت دو را تماشا می کرد که سر به سر هم می گذاشتند، حس کرد تبسمی ساختگی گوشه لبهایش نشسته خواست پاکش کند اما نتوانست حتی موقعی که داشت دو را سوار سرویس می کرد، یا وقتی جلوه در داشت با دیوید چند کلمه ای حرف می زد آن تبسم آور. همانجا گیر کرده و مانده بود. انگار آن را زیر پوستش حک کرده بودند. حالت صورتش موقعی عوض شد که همه رفتند و خودش تنها به آشپسخانه برگشت. با چشمانی خسته دوروبرش را نگاه کرد. همه جای آشپسخانه کثیف شده بود. به املت نیمه خورده کاسه های و پیش خانه پر از لکه نگاه کرد سایه اوشه ای بود و بی منتظر رفتن به پیاده روی بود اما الا حتی پس از خوردن دو فنجان قهوه و یک لیوان مولتی ویتامین چنان بی بود که سگ را فقط تا باغچه برد. به خانه که برگشتند دی چراغ قرمز پیامگیر تلفن چشمک میزند. همین که دکمه را فشار داد صدای مخملی جانت اتاق را پر کرد. مادر: آنجایی مثل اینکه نیستی و گوشی را بر می داشتی صدای کرکر خنده میدانی از دستت خیلی عصبانی شدم؟ اما الان دیگر گذشته. البته کارت اشتباه بود نباید به اسکات زنگ میزدی. گرچه میفهمم چرا این کار را کردی؟ مامان جون: نیست که همیشه دستم را بگیری و مواظبم باشی. بچه ی ناقص توی دستگاه دیگر بزرگ شده. اینقدر دست و بالم را نب. بکزار روی پاهای خودم بیستم، باشد؟ اشک در چشمان الله حلق زد نوزادی جانت به یادش آمد پوست تنش قرمز بود صورت کوچکش پر از چروک و نک انگشتهایش مثل شیشه شفاف چون ریه به اندازه کافی رشد نکرده بود هفتهها داخل دستگاه تنفس نگهش داشته بودند. چنان ناآماده به این دنیا آمده بود که الا چند شب بیخوابی کشیده بود. برای آنکه مطمئن شود نوزاد نارسش ماندنی است، روز به روز، هفته به هفته، به هر دم و بازدمش دقت کرده بود. همان موقع برای آخرین بار به درگاه خدا دعا کرده بود آخرهای پیام صدای جانت موجدار شد مامان جونم خیلی دوستت دارم مبادا فراموش کنیم الا لبخند زد فورا نامه عزیز ظاهرا یادش آمد پس درخت دلهای شکسته در آن روستای دور افتاده گواتمالا کار خودش را کرده بود. خاسته عزیز محقق شده بود. دست کم نصفش. جانت با تلفن کردن به مادرش و پیغام گذاشتن وظیفهش را انجام داده بود. الان نوبت الا بود. به تلفن همراه دخترش زنگ زد. و موقع درس خواندن در کتابخانه دانشگاه گیرش آورد عزیزم به پیغامت گوش کردم از چیزهایی که پیش آمده خیلی متاسفم من را ببخش جانت آهسته آه کشید دیگر خودت را ناراحت نکن ای نیست مادر نه مسئلهی هست باید به احساسات تو بیشتر احترام می‌گذاشتم. حق نداشتم اینطور توی زندگیت مداخله کنم. ژانت با پختگی که از سنش بعید بود گفت: فراموشش کنیم برود. باشد. توی هر خانواده از این چیزها پیش می‌آید. هر که می‌شنید فکر می‌کرد مادر اوست و الا دختر سرکشش الا که انگار خاطرش آسوده شده بود گفت باشد فاصله جانت طوری که انگار از جوابی که میگیرد بترسد با صدایی تردیدآمیز خجالتی و گرفته پرسید مادر پیغامی که آن روز برایم گذاشته بودی منظورم در پیامگیر تلفن است. خیلی به فکرم انداخت. حرفهایی که زدی راست بود. واقعا احساس بدبختی می کنی؟ الا سریع قضیه را درس گرفت. البته که احساس بدبختی نمی سه تا بچه فوقلاده تربیت کردم. چطور ممکن است بدبخت باشم؟ اما ژانت چندان قانع نشده بود منظورم این است که با پدرم خوشبختی الا که دید نمیتواند دروغ خوبی پیدا کند تصمیم گرفت راستش را بگوید خیلی وقت است با پدر از زندگی می کنم بعد از این همه سال آشق خیلی سخت است همه زوجها ها اینطورند جانت گفت درک می کنم. و عجیب است که الا حس کرد دخترش که هنوز در دانشگاه درس میخواند واقعا درکش کرده است به محض اینکه گوشی را گذاشت کاری را کرد که خیلی وقت بود نکرده بود شاید هم مدام عقب می انداخدش. آرزو کرد عاشق شود اگر عشق به دنبالش نیاید او به دنبال عشق میرود خب اما چطور؟ حالا که دلش این طور شکسته و اعتماد به نفسش را کاملا از دست داده میتواند بار دیگر آشق شوهرش شود؟ خب شاید یکی دیگر؟ عشق بجز تقدیم کردن قافیه به بی قافیه ها هدف به بی هدف ها لذت و هیجان به دلتنگ ها دیگر به چه کاری میآید در این دنیای فانی پس آنهایی که خیلی وقت است از سودای یافتن عشق در گذشته اند آنها چه میشوند پس از پایان روز نامی برای عزیز نوشت عزیز گرامی به خاطر کاغذی که به درخت دلهای شکسته آویزان کردی تشکر می کنم. شاید هم در سایه کاری که تو کردی توانستیم یک مشکل خانوادگی را حل کنیم با دختر بزرگم آشتی کردم فکر می کنم درست بوده مدام بین دو قطب در رفته آمدم یا خیلی مداخل جو می یا خیلی منفعد یا در زندگی کسانی که دوستشان دارم خیلی دخالت میکنم یا اینکه تماشاچی وقایع میشوم از توکل گفته ای هیچ وقت در زندگی از این کلمه استفاده نکردم باید اعتراف کنم تسلیم تو ام با آرامشی را که درباره اش حرف میزنی تا به حال تجربه نکردم، راستش جنم صوفیگری ندارم، اما یک چیز را میدانم رابطه ام با جانت وقتی درست شد که من از پافشاری و مداخله کردن دست کشیدم، یعنی مجبورش نکردم، توکل اگر این است به کار می آید. دوست داشتم من هم برای تو دعا کنم. اما از آخرین باری که در خانه خدا را زده آنقدر زمان طولانی گذشته که فکر نمی کنم به من بفرما بزند. ایوال، به گمانم مثل کاروان سرادار قلچماق توی رمانت حرف زدم. نگران نباش، هنوز درونم آنقدرها هم بوی کهنگی نگرفته. هنوز نه. دوست جدیدت در بستان الا